از سعید شنیدم که شما مهماندار هواپیما هستید. به نظرم شغل جالبی است. بله، من مهماندار شرکت ایران ایر هستم و شغلم را دوست دارم. بیشتر مردم شغل شما را جالب، متنوع و هیجان آور دانند درست است که این کار هیجان آور است. اما من در کنار این شغل دوست دارم، گاه در کتابخانهای ای بنشینم و مقالات علمی بنویسم. آیا تا به حال این کار را کرده اید؟ بله، هر وقت فرصت پیدا می کنم در مورد شغل خودم و صنعت هوایی مطالبی را می نویسم. چه خوب، پس اطلاعات کاملی در مورد فرودگاه های ایران دارید. بله، ایران بیش از صد فرودگاه دارد که سی فرودگاه آن بین المللی است. همه این فرودگاه های بین المللی بزرگ هستند؟ نه همه، فقط در دوازده فرودگاه هواپیماهای های پهن پیکر می بنشینند. مردم ایران تا چه اندازه سفر با هواپیما را دوست دارند؟ در ایران هزاران پرواز در طول سال انجام می شود و میلیون نفر از مردم با هواپیما سفر می کنند. شما اطلاعات خوبی دارید. معلوم است که به پرواز و صنعت هوایی علاقمند هستید.